بحثی که بیروز مطرح شد در آخر بعد راجع به کلام حقوم نایمی بود که شدیه اون هم قبل از ایشان عشق همساری قبل الله شده و حاصلش اینه که مفاد حیئات و معنی حرفی به طور کلی قابل تغییر نیستند و از اصلاح هم در اونها راه ندارد. به تغییر مرحوم شیخ چون معانی حرفی جزئی هستند به تغییر مرحوم نائینی چون معانی حرفی ایجادی هستند لذا تغییر و نمیدونه اصلاح و تغییر درشون راه نداره البته در معامی حرفی مرادشون یک اونجاهاییست که با حرف اثباته یک حکم میشه مثل الله علی ناسی جلوید من استفاده علیه سبیل هم. یا با به اصطلاح مسئله حیات, حیات وجود داشته باشه استفاده کنه حیات مشتق یا حیات امر یا حیات نقره الاخره ما در همین آیه مبارکه الله علیه النازح جل بت من است سبیلا این من است تعالىه سبیلا برای تقریده وجوب نیست وجود مطلقا الله این برای تقریده بیان یعنی عطف بدل بدل از جو عطف بیان است برای لح ناس بر الله علیه النازح این ناس رو بیان میکنه این ناس کسانی هستند که من است تعالىه سبیلا هر کدام از مردم که قدرت به احساس سفر به حج داشتن این رفتن حج برای اینها سفر رفتن حج برای اینها واجب میشید این مطلبی بود که دیروز مطرح شد ما به این مناسبت توضیح کردیم که اصولا کلمه ایجاد و تعبیر به ایجاد در معانی حرفی برای اولین بار و کلمات محقومه محقق نجموله میردی رضوان الله تعالی علی در شرح کافیه بودی و البته شون مرحوم ناینه علامات تقریرین اونتون که ذهنم هست ندیدم که اشعاری داشته باشه که این مطلب رو ایشون از مرحوم نشماله نیراتی گرفتی باشه احتمالا اجدار خود اینشون باشه به هر حال ایشون محسرش شدن که معانی اسمی اختاری هستن و معانی حرفی ایجانی و مرادشون از اختاری یعنی اون لغت داره معنای اسم ما می می‌کنیم به ذهنمون ایج... معنا رو احضار می‌کنیم در ذهنمون این رو مشون گیره مثل میز مثل صندلی اما در اجزادی نه ما با همین لفظ ایجاد می چرا چون واقعی وجود نداره وقتی میگیم کتاب روی میز اون چی که وجود داره کتاب و میز دیگه روی چی این ما با کلمه روی میز سلام نده ما با کلمه روی میز ایجاز می‌کنیم معنای حرفی رو یا مثلا فرض کنیم در فل که یک نوع اسناد درش خوابیده یا در مشتقات که یک نوع افاده معنا میکنن چون عرض کردیم حیات چه حیات افرادی چه حیات ترکیبی ترکیبی هم چه حیات ناقص و چه حیات تا در لغت عرب معنا داره خصلت لغت عرب اینجا در این حیات که این معانی متعدد هست معنا به نحوه به تبیر ایشان ایجادیه یعنی ما با خود همین معطه ایجاد میکنیم مثلا طلب رو ایجاد میکنیم زج رو ایجاد میکنیم چون اینا ایجادی هستن اختاری نیستن لذا قابل تقیید نیستن قابل اطلاق نیستن این مراد ایشان الان که فرمونده ارز کنم که دیروز ما به اون مناسبتی توضیح ارز کردیم اولا بایید میدونم می از از با تکرار میکنم که ایشون از مرمون نجوله ایم اون ایجادی که مرحوم نجوله ایم در کتاب شهر کافی فرمونده مرادشون این است که معانیه حرفی خودشون مستقل نیست در دل استقلال تصور نمیشن دائما در طرف یعنی لحاظ طرفین میشه تا معنایی مرادشون لحظ نیست خود معناست یعنی به بار شما یه دفعه رو فی نفسه تصور میکنید که عدم مصوبیت باشه افتدا در لغت عرب ابتدا در فارسی ها در عربی. یعنی ابتدا عمل یعنی مصوب دایر نباشه فرض این وقتی صحبت کردنتون از ساعت 9 بوده قبل از ساعت نه, ساعت نه صحبت نبرمودیم یعنی ابتدا صحبت ساعت 9. افتدا یعنی عدم مصروبیه این عدم مصروبیه یا یعنی مثلا زرفیت یعنی یک چیزی محتمی بشه و شامل بشه چیزی دیگری رو به حیثی که اون چیز دوم از او هم خارج نشه در ظرفیت این قید هست یعنی میان این معنا رو لحاظ میکنن که یک چیزی که اسمش رو ظرف میگذاری شامل بشه و احاطه پیدا بکنه و در خودش ترابیل چیز دیگه رو که استراحاً مظروف اسمش رو میگذاری و خارج هم از او نباشه اگه خارج باشه دیگه ظرفیت صدق نمیکنه. مثلا میگین الماعف ال کوز که کوز،, کوز یا کوزه رو با عنوان ذرف حساب میکنیم و آب رو با عنوان مظروف وقتی شما میگین آب در کوزه است که کوزه محیط بر آب باشه آب رو در خودش فرا گرفته از آب هم ازش بیرون نه شده باشه اون آبی که بیرون آمده دیگه مظروف نیست شرط ذرف مظروف نسل سلاح کوزه آب آغاز بیرون. با دیگه بهش میگن آلمان آفریکوز. صدر ظرفیت به این از که زر احتوا و استفاده داشته باشه بر مضروف آخوده. این اسم ظرفیه در لغت عربی اسم این ظرفیت رو تازه با عنوان خود اول البته خود این مفهوم یک مفهوم نسیه کاری بلند نداری. خوب جعبه رو خود مفهوم ظرفیت، یک مفهوم نسبی است مراد از مفهوم نسبی یعنی فی نفسه لحاظ نمیشه مثل میز این است ظرفیت که لحاظ میشه که یک ظرفی باشه یک مذوفی باشه اگر شما لحاظ این دو طرف نکنید اصلا خود این مفهوم لحاظ نمیشه بنابراین خوب دقت بکنید ما در مفاهیم معانی اسمیه گاهی مثل میز معنی رسمی می لحاظ میشه این احیایی به قرفه مثل وقت سود مثل بلندگو مثل تصویی این اصلا خود معانی به اصطلاح خود اصما هم معانیشون فرق میکنه گای امور متحسل هم گای امور اعتباری گای امور انتظاری هم مثل امکان گای انواع مختلف داره گای اوقات معنا خودش نفس یک معنای است معنای نسوی یا معنای اضافی عبارت از اون است که با یکی دیگه در لحاظ میشه ظرفیه است شما نمیتونیم فی نفسه لحاظ بکنید. تا ظرف و مظروفی رو تصور نکنیم نمیتونی ظرفیه ولذا ما عرض کردیم اگر بگیم در معانی حرفیه برای انهایی اینا کلمه انها خوبه نسبه ولی اعتبارات بر اضافه مزار یک نوع یک نسبتی اضافهی مفاهیم نسبی انها اینها انهاش هم یک نهو نیست گاهی ممکن است بین دو را متصل باشه بین اگه هم را متصل به اعتباری باشه بین دو را اعتباری باشه ممکن است اصلا در یک تفلیقات ذهنی باشه که در ذات ماهیت مثلا دیم ماهیت به لحاظ ذاتش این از ماهیت به لحاظ مخصن لاوشت مخصن اینه این هیسیات که میاد انهای هیسیات اینها لازم نیست که حتما طرف این هم یه بهذا تأثیل خارجی داشته باشه ممکنه طرف هم اعتباری باشه ممکن ممکنه طرفین هم جلی باشن قراردادی باشه تنزیلی باشه هم ممکنه طرف این هم مثلا بینیم که معنای به اصطلاح خیالی باشه معنای ابداعی نفس باشه جزو مدرکات ابداعی نفس. که نفس درست میکنه این اینطور نیست که لازم داشته باشه تر که در اینجا میگیم اهم هست از نصبیه که ما بین امور متحصله و غیره هر چیزی رو که با هم مقایسه می‌کنیم، این رو اصطلاحاً نسبت پس ادهی از مفاهیم خودش مفاهیم نسبی هست فقط فرقش اینه که مفهوم نسبی رو گاهی پی نفسه می‌کنیم. میکنیم مثلا زرفیت البته زرفیت خودش اگه مفهوم نسبیه. یعنی یعنی تصور ظرفیت مقتنیث بر وجود طرفین با ظرفی باشه مصروفی باشه احتمالی باشه اشتمالی باشه تا کلمه ظرفیت بیا کلمه استعلا بیه کلمه ابتدا بیه ابتدا یعنی عدم مسروفیت به غیر یعنی شما وقتی در نظر بگیریم وقتی میگوییم لحظه ابتدا راه به کار ببریم در جایی به کار بردیم که قبلش نبوده مصوبه به غیر نیست یا عدم ملوغیت به که اسمش میشه انتها وقتی میگیم مثلا شب انتهای روزه انتها یعنی دیگه بعد از شب روزه نیست یعنی دیگه این فرق این عنوان بعد از این هر که اسمش مو انتها سوبود نداره این ابتدا و انتها که هر دو مفهوم نسبی هستن خود این مفهوم نسبی رو تا شما با یک مفهوم عام در فی تصور میکنی مثل تصور عدم مسئولیت یعنی به غیر این تصور یعنی وقت عدم مسئولیت به خودش نه به غیر یعنی این فرد قبل از این وقت نبوده قبل از این حد نبوده عدم مسئولیت کلمه غیر و عدم ملقویت بعدش هم نبوده یکی ابتدا میشه که انتها میشه یکی ظرفیت میشه که استعلا میشه الهی یه دفعه همین ابتدا و استعلا و ظرفیت رو مونکند در طرفه نگاه میکنیم و اون وقت میگن الماوفل کوس الیزا کردن در فرق بین اینکه این, این معنای اسمی با معنای حرفی چه فرقی میکنه مثلا فرض کنید اینکه دیگ از اهل سنت در قدیم مصاف فرقش رو مثل فرق جوهر و بحر از بعد اومدن گفتن نه، عرز بالاخره یک وجودی داره، به امکانی که غیره اله، که بالاخره وجودی داره مستقل وجود برش می اما در معنای حرفی اصلا وجود نداره. عنوانش رو بعد عرز بکنید مثلا به قول مرحوم برونژورای میراتی قدس سر اللهم. بعضی اومدن مثلا فرض مثل صاف فرق بین استقلالی و عالی رو داشته بعضی آمدن بعضی از مشایخ فرق بین مثلا لف و نشر مثلا معنی اسمی یک نوع معنی تفصیلی و نشر معنای حرفی یک نوع اجمالی و به نحوه لف پیچیده به ذهن ما این است که شما سوابش هست چون بحث معنای حرفی و عیحیات یه بحث بسیار دامنه دار و واقعا مفیده یعنی واقعا در هم ابحاظ اصول و هم ابحاظ لغت شناسی و زبان شناسی این یک بزرگی داره خصوصا در اون تأثیر تاریخی که دیروز ارز کردیم وجود کسات معانی حرفیه در یک لغت علامت عمر فکری اون لغته مثلا تحلیل ذهنی و تحلیل فلسفی متکلمین به این لغت بالاست کمان اینکه که کسات معنای اسمی علامت تقدم صنعتی و علمی جامع پسون در جامعه شما با مثال 5 تا وسیله برقیه هست خب به هم اندازه اسم می در در جامعه دیگه ده تا وسیله برقیی هست 10 خب تا اسم میزن. در یک جای سی تا وسیله برقیه هرچی چی وسایل بیشتر بشه خای های اسم برایش بیشتر همین بازی هااف با از اون بازی فوتبال در یک جامعه ممکن سه تا بازی باشه 8 خب تا اسم میکن. در یک جامعه مثلا ممکن است که 5 تا بازی باشه با همین تو. خ های 5 تا اسم میدارن. ده نوع باشه ده نوع اصف و حالا مجرم خود کسرت هر چیزی دلالت بر وضع اجتماعی و بلکه دلالت بر حقیقت اون جامعه میکنه. من صابقه هم توضیح دادم بعضی ها شاد سعیشون اینه که مثلا نشون بدن لغت یه چیزی شبیه لباس مثلا یه چیزی شبیه خانه خب خانه های متعدد یعنی خانه های مختلف شکل های مختلف در ها دیر جو خونه می سازن در شهر ها جور می سازن الان مهندسی ساختمان ما با اون مهندسی که قبل ها مثلا در همین قوم هم بود شکل اتاق ها فرق کرده، عوض شده خب اینها شما تا واردیه یه خانه بشین از اون خانه تاریخ اون جامعه رو وضع اون جامعه رو مثلا اینجا جامعه است که سرسیر گرسیر مطابقه با شرایط خودشون این خونه رو درست کردن این خونه مثلا سبک قدیم سبک جدید این مهندسی ساختمان متأثر است یه مهندسی که مثلا در غرب بوده در شرق بوده در کجا بوده فرض کنیم مثلا در روسیه با مثلا چون هوافو قلعات سرده قالبا ساختمان ها دو دره هستن یعنی وقتی وارد میشه در بسته میشه در دیگه برای اینکه انرژی تلف نشه و داخل خب اما ما تو ساختمان نداریم. اگر بناباشی یک جایی بسازن میگید مثلا متاثر شدن به فرهنگ ساختمانی مثلا روزها مثلا, مثلا و مثلا آیا لغت هم همینطور مثلا شما اگر دکت بکنید در مثلا چلپنجه ها سال پیش های محلی تو ایران زیاد بود الان بر اثر انتشار روزنامه و رادیو و تلویزیون تقریبا لحجه ها رو به وحدت برمید چون متاثر به رادیو و تلویزیون میشن قالبا به یک لح در, در ساله که در ساله میکنیم این در با اون به دیگه دو کیلومتر فاصله هایشون روح میکن الان شهرهایی که بیش از حضا از هم با هم بیگه فاصله دارن لحجه هاشون خیلی به هم نزدیک شده خب آیا واقعا ارزش لغت و زبان در زندگی بشر مثل این خانه هست مثل لباس که یک مراحل معین تاریخی رو معین میکنه. انصافا این جد هست اما حقش این هست که لغت و زبان در ذات انسان نفوذ داره و این طور نیست با اولا این انسان قرار بگویم با اول منطقی ها جزد ذاتی که انسان بالا. این تأثیر هست نمیشه انکار کرد لکن این تأثیر ها بیشتر تأثیر های سوری و اما این حقیقت لغت و واقع لغت به این حرفات نیست که مثل تبدل لباس یا تبدل خانه فرهنگ خانه این طور نیست خیلی مطلب بالاتر از این حرف ه علایه حاله لذا این که مثلا در یک لغت حیاات باشه یا در یک لغت پسند و پیشوند باشه یا در یک لغت هیچ کدوم نباشه حتی مفاهیمی مثل مفاهیم نسبی من از کردم الان در خط هروقلیف در این خط مثلا در بسته میگذارن در باز میگذارن ما الان این دربازه است و در بغزه است دو تا جمله به کار می بردن. آیا واقعا در زبان تیره تلفظی می‌کردن؟ همش که دو تا شکل کشیدن دو تا لفظم داشتن. یعنی ما به طور کلی دیگر اصلا حیئات به طور کلی نداشتن. مثلا دربازه است یک لفظ به کار می‌بردند، در بغزه یک لفظ دیگه اصلا به کار نمی‌برد. خب این یک نوع تفکر، این یعنی جامعه رو و اون مردم رو میشه از راه این تفکراتشون شناخت. و لذا مسائل که ما اصولا در تحلیل لغت درابطهش با واقع انسان با زدهی انسان و با پیشرفت اجتماعی یا پیشرفت بسن عدید داره کاملا بید. به اصطلاح تحلیل بکنیم و این صافن یک بابیست که هر در اونجا گفته بشه کمه یعنی خیلی باب مفصلی و صحبت های بسیار طولانی و مفصلی در پیگاره لذا وجود مثلا حروف وجود حیات نحوه حیات همین روز بعد از بحث مثلا در زبان فارسی برای هیئت ها از کلمه اصل استفاده می‌کنن و در زبان فارسی باز برای اصل وجود از کلمه هست زید هست زید بنا است یکی هستی که از مثلا همین نکته در لغت عرب نیست فرق بین اصلی و هستی ولذا در لغت عرب مثلا خانه رو میگن خانه تامه، خانه ناقصه. لفظیه دیه چیه؟ با قرائن فهمیده میشه. با قران لفظی هست. اگر فائل داشته باشه خانه تامه است، اگر اسم و خبر داشته باشه خانه ناقصه است. اما در زمان فارسی اینطور نیست. برای خانه تامه هست رو به کار میبرن و برای خانه ناقصه است رو به کار میبرن. البته واسه در لیست اسهام و نواسه در زمان فارسی فرقی نگذاشتن زید میز زید بینا نیست فرقی بله حاضر نیست نگذاشتن یعنی نفیه هست و اصل در لغت فارسی یکیه در لغت عربی هم که لیته فقط برای به اصطلاح رابطه یعنی برای مفاد لیتهی نابطه اصلا در لغت عربی لیته در لیتهی تامه به کار نمیره کانه در تامه و نابسه به کار نمیره کانه زیدون کانه لاحالا نکن نهاروشه ولیکن برای تامم این تام بود برای نابس هم به کار میده اما لیسه در زبان عربی فقط برای نابس است. اینه که به اصطلاح میگن لیسه نام تاممه این لیسه تاممه به لازه معناست نه به لازه استعمال لحظه لیسه اگر بخواهن لیسه تاممه رو بکار برن از لم یکون استفاده میکنن لم یکون زیدون نمیگن لیسه زیدون به معنای لیسه تامه اما در زبان فارسی اینجا هم به استاد دو تا زبان با هم دیگه لحظه نیست هم برای لیسه تامه به کار میشه هم برای لیسه نافذه و در مقام افت نه دو تا لحظه دیگه بارد این خودت نیسته میتون بحثای است که این تحلیل لغت یک امر بسیار مفید و مهم البته ما یک مشکلی داریم این مشکل رو مثلا ما مباحثی که مربوط به لغت بشه در های خود اون مستقلاً نداریم الان در خیلی از دانشگاه درس در چه جدیدی رو به نام لغه که در حقیقت همین تحلیل لغوی قرار دادن یا تو حوزه‌های های از بحث خارج شد یا تو های ما یک درس مستقلی شبیه همین که کاریدای لغوی رو و چندین لغت رو با هم مقایسه کردن و مباحث زوال رو قرار دادن یا تو اصول که الان ما تشیدیم توی مجموعه بحثایی که شما توی حوزه می یعنی شما توی حوزه فقه میکنیم خونید، نه حوزه معانی می بیانی مقدار تو بیان هست. حالا بدی هم یا می بخونن بعد از که منطق میخونیم، فقر میخونیم، میخونیم. میکنیم خونیم، میکنیم اصول میکنیم این مجموعه تفسیر می خونیم، حالا فلسفه می این مسئله اسمش چیه؟ حالا فلسفه مثلا درس‌های جانبی حوزه مثل اخلاق، مثلا تاریخ و اینجور چیزا. لکن ما مواریس تحلیل لغوی مخصوصاً یک نوع مواریس تحلیل لغوی مقایسه‌ای که بین لغات مختلف مقایسه بکنیم و مثل همین تغییر که الان کردیم کانه تاملیتی تاملی کانه ناقصلیتی ناقص تام این مواریس و مقارنه اینها با زبان انگلیسی و زبان فرانس و آثاری که اینها روی این جهد داره و تأثیری که ممکنه از پس تا رو مقام استنباط بگذاره انصافاً الان تا یه مقدارکی توی بیان گفته میشه و بیشتر و مفصلتر تو اصول الان گفته میشه الان ما تحلیل های لغویمون بیشتر فیلن تو همین الان مثل این که الان راجبه معنی هر فیران داری مطمئن این تحلیل های لغویم لیکن مشکل کار ما به طور کلی این احساس به تحلیل لغوی نداره. به طور کلی چون بحث های حقزبی ما اتجاه آمونش فقه و استنبالت و حجیت تحلیل های لغوی ما هم مثل یک هرمی که رأس هرم به طرف حجیت گوبه لارد که منطقه آلوان یک تحلیل‌های هایی رو که بعد نتیجه حجیت بگیریم برگرد به رو و حجت بودن و یعنی ما تحلیل لغوی و بانونه تحلیل لغوی بحث نمی‌کنه. های رو اقامه می‌کنه. فرض شما مثلا مقداری از فلسفه رو سعی میکنیم، غالباً مختص که مذهبی هستند، بیشتر بکشه به معارف دینی اونطوری بررسی می‌کنه. اما یه فلسفه رو با قطع نظر از اونها این هنوز به تو توزیع ما تو شخصیت داره اداره استنکارهاست. تفسیر طبیعت دینیه خب معنی تفسیر قرآن معنی که تفسیر الهی معنی بکنون که چه تفسیر اما عددا از بحث های موبای که طبیعتشون طبیعت دینی نیست. مثل همین که طبیعتش طبیعت دین من بود به لغات منده شناف لغات جامعه ها افراد، زبان مراحل تاریخی بحث جغرافی های جغرافیایی رفت به این قسمت و به طور طبیعی چین اول و ناخوددارگاه بحث های لغوی رو ما ممکن است بحث مشتق رو بکنیم تحلیل هم بکنیم وکن آخرش اینجا میه که داره که مثلا تحت شجره مسمره، مثلا قضا آهاجت نکنه مرادش نگه مسمره چیه مثلا میوه داشته باشه اگر زنستان برگاشیخه میوه نداره میشه مثلا قضا آهاجت کرد مراد از مسمره رو که ذاتن مسمره ولو الان میوه نداره یا نه مراد از مسمره اونه که بلکه میوه روش هر. اگر میوه روش نباشه اشکال نداره مثلا ما یه تحلیل بحث های مشتق با حیات افرادی روده بحث های طولانی انجام میگه. آخرش ش هم این تو با سوفه باجیت و, و است ها و روحقگ تثیر بیشترش گفت در اونجا زاره میشه اون ز مثل معروسی در حوزه های ماز قو توز کنرف ن. بی بیشتر در حتی مثلا بخشث های بلغری که آیا فلان کلم به این معناسی ها نه بعد اگر نظر پولان چیمشه دقیق میکنی ما یک مشکلی به لحاظ حوزه های خودمون داریم حالا چون خیلی بحث میشه که در حوزه های ما بحث ها چه بشه نیاز هست؟ بیلیم. من معتقدم که همچنان که سر و نحو و اینها خونده میشه بحث های تحلیل لغوی هم و زبانشنافی هم اضافه بشه به حوزه که ما وقتی میریم تو اصول دیگه خیالمون راحت باشه تکرار نکنیم چون ما الان تو اصول هی مبتلا میشیم هی تکرار میکنیم معنی هرکه اینجا تکرار میشیم بحث برس تکرار میکنیم تو بحث عاجب مشروط و به مطلقا مشروط بفهم میکنید به علاوه اخری دو مرحله هی hey, همین بحثایی که الان داریم مطرح میکنه خب این بحثا تو معنی حرفی گذشت که بحث مطلب مطلقا مشروط گذشت اینجا هم باز در متای مرحوم نایینی آورده ما هم مچویو به خاطر مرحوم نایینی بیاری و خیی نفها خوب یه با توضیح داره بشه تا مطلب روشن بشه لذا اگر اینها مسللا انصافا بحث تاریخ بحث بحث تهدات و مسائل زبانشناختی مخصوصا به نظر من یه مقدار زبانشناختی مغارنهی به کار برده بشه مخصوصا به نظر من زبانهایی که الان عامه مسلمین با اونها تکلم میکنن فارسی هست عربی هست ترکی هست اردو هست این زبانهایی که فرصان کردی هست زبانهایی که عامه مسلمین با او تکلم میکنن چون خب از تمام این تواهف در حوزه های ما افراد وجود داره. و افراد طبیعتا با زبان مادریشون اونسشون بیشتره یعنی راحت‌تر براش. وقتی رخ مقایسهی شد مقایسه زبان عربی با زبان کردی، ترکی، اردو، پشتو الی آخری با این زبان‌های مختلف خواهی نخواهی برای اونها بهتر جا میفته. بهتر به اصطلاح روشن میشه. خسارت این لغت مثلا اردویی که فطریه او شده. با خصائص لغت عربی که الان میخواد بیاد در کتاب و سندت و روایات اخلبه ساموندالی مجمعی میخواد اینها رو پیگیری بکنه الان این که جماکان خیلی طولانی صحبت نکنیم گانگاهی صحبت این که احتیاج بوزه های ما به چیست شد که به نظر ما میاد که اینطور تفصیل بی اولا معانی اسمی که در اینجا میگیم وقتی میگیم فرق بین معنای اسمی با معنای حرفی مرادمون معانی اسمی مرادف معانی هر نه فرق بین شی و میز مثلا میز مرادف شی نیست مرادف شی ظخیت میز مرادف من نیست نتید یعنی بین من و میز مقایسه بکنیم بین من و کتاب مقایسه بکنیم اگر میخواید مقایسه سرو بین من و سی بین شی و ظخیت. این مقایثه باید اینجوری و طبعا در این مقایثه همه علاستوان چون خصلت لغت یک خصلت اجتماعیه یعنی با توش تفیم و تفهم باشه اگر من یک لغتی رو خودم برای خودم بخار ببرم با کسی تفیم و تفهم نکنم این لغت نمیشه لذا مباحث لغتی این مباحثی که بر میگده به استزها تمام افراد جامعه در شریک هست ممکنه افرادی که به اصطلاح عامی هستند و درست نخونن به اصطلاح معروف عوام عمومی مردم یک معنا رو استظهار بکنن اما تحلیل نتونن بکنن ما کراه نهار کنمیم همون معنایی که در ذهنیت عرف عام وجود داره این نیازی به یک تحلیل داره که طبیعتاً یک اون تحلیل بعضی از اون حدود و قیود رو اضافه میکنه مثلا اگر گفت کلمه قرض یا شستن مثلا میگه من این آل رو این نل رو از خاندان خودم مثلا با یک تیر گلو شستم این شستن در اینجا به اصطلاح حتی در عربی هم قرض یعنی استعمال شستن این به معنای واقعی خودش نیست یا حتی میگه که یغسل و اون انا به ما و من به تراب بگیم قصر با تراب این مراد این نیست که انسانه که میخواف دور برش بریزه که به قصر اموان مثال در لغت عرب عبارت از این است که یک جسم رو در آب قرار بدیم به حیثی که آب بر او احاطه پیدا بکنه یک مجرد احاطه نیست آب در او سرایان پیدا بکنه این رو ما با ما به سموراجات به شواهد اثبات دقت کنید مراد من از تحلیل دائما تحلیل حیات ترکیبی نیست حتی مواد به مبلور تصوری هم تحلیل میشن مثلا در که شستن باشه آیا مجرد احاطه ما برای جسم کافی است که بگیم محسوس شده یا اضافه بر احاطه ما باید جوری باشه که اون آب انتقال پیدا کنه روان باشه یعنی چه روان؟ اصطلاح روان یعنی در آن سانی جایی باشه که در آن اول نبوده در مفهوم قصد مجرد اینکه شما مثلا یک حولهی که پر آب رو دستون قرار که آب تمام دسته بگیری اینه قصد نمیگن باید آب جوری باشه که اضافه بر احاطه روان هم باشه این روانیش هم به این معناسته آن دوم در جایی باشه که در آن اول نبوده اگر آب به این احاته پیدا کرد و سیلان و انتقال پیدا کرد روی عوض روی چیزی اون وقت میگیم قد پاسه خب خاک این خاصه خاک احاطه پیدا میکنه سیالان نداره. مگر با باق مثلا باد بوده این خاک احاته پیدا میکنه راسته اما ما در زبان عربی و در زبان فارسی نمیگیم با خاک شست حالا چه بخار بگیم که مثلا ننگ رو با زدن یا با شمشیر این ننگ رو از خودش شست این شستن من... یعنی بر اثر این تحلیلی که ما انجام دادیم خوب دقت بکنیم ممکنه است عرف بگه با خاک شست اما بر اثر این تحلیل روشن میکنیم که حقیقت قصل بر اثر تحلیل یک نوع تهدید میردیم یعنی حدود قصر هم مشخص میشه این یک مثل مثل دوم باید بعد از تحلیل باز برگردیم به اون استظهار اولی عرف نباید یک تحلیل ذهنی از یک مفهوم بذیم که وقتی ما باقیم با عرف تفحیم و تفهم بکنیم مکالمه بکنیم صحبت بکنیم عرف اون معنا رو نفهم یعنی تحلیل هم معدی میشه به تحدیل یعنی هم تفسیر است هم تحدید است هم باید رجوع داده بشه یعنی باز دقیقاً تحلیل یک نوع باز کردن مطلبی است لیکن در نهایت بقولون آران حرکت ظاهبه و راجعه و داره در اون حرکت راجعش بقولون آران نهایت نهایتاً باید منتهی بشه به همون فهم افضایی و ار نمیتونیم یک تحلیل ذهنی ارائه بدیم که از مفهوم و خارج بشه این مئیار است در تحلیل‌های های لغوی که سابرن حد کرده پس <تصفيق> در تحلیل لغوی خودمون اصلا مثلا موجوع به فهم ارفیز و در این مثال بین سقیق و کبیر و زن و مرد و پیر و جوان هیچ فهم نمید اصلا تا رابطهی بین لحظه معنا بنابراین که بین لحظه معنا رابطهی وجود داره مثل مبنه خویی که آلم به به اساس تعهدن تعهد. که قالب مبنای تعهد اینکه رابطه بین لفظ و معنا هست این رابطه در عالم اعتبار و در جایی است که بین طرفین باشه اصلا این پدیده یک پدیده اجتماعی پدیده فردی نیست اگر یک کسی در غار زندگی بکنه خیانه نخواهی وعده نمی کنه الفاظ قرار نمی کار کارتون صبح میخواه و بلند میشه آب میخواه درخ میخواه شجر مثلا میدهی داشته غذا چه به قرم اون قضا حیوانی باشه اصلا نیازی دیگه به وقت نمیکنه. این مسئله وقت یه مسئله اجتماعی است لغت یک پریده اعتباری است و ساتوش تفهیم و تفهم نباشته باشه ولی اگر بنده صاحب و تخصیل تحلیلی از معنی هستی کنم بخواه اینو شما هم باید فکر کنید بیدید واقعا این تحلیل اولا فی نفسه درسته ثانیه هم شما رو به اعتقال داد و اولیتی میانه هم سر تحلیل اینه مثلا تحلیل آلی و استقلالی که در کتاب فصول آمده و از فصول هم کفایی گرفته اون مشکلش خود کلمه آلیه که این یعنی چی مثلا در اینجا از کردم بحث به که قرار به نگاه بفرمایید دو تا احتمال دو سه احتمال در مراد جدی از کلمه عالی داده چون خود لحظه عالی روشن نیست که یعنی چی فرق بین عرض و جوهر آیا واقعا فرق بین معنای حرفی با معنای اسمی عرض و جوهر مثلا اون فرقی رو که ما مطرح کردیم فرق بین استدلالی و اندکاتی نفسی و اندکاکی حالا می‌شین تو. مراد ما اینه که شما یک مفهوم رو خودتون در ذهن احضار میکنید مثل ظرفیت، مثل ابتدا، این اسمش اسمی. همین مفهومی که در ذهن احضار کردین، اگر بین دو طرف دیدین اسمش خاصه. مونده که در طرف این باشه. وقتی میگید سر تومن البسر و دیروز توضیح احض کردیم که معانی حرفی علامت رشد فکری و تحرید فکری یک جامعه است و دیروز احض کردیم معانی حرفی اختصار و اختزال کلامه شما اگر بخواییم مثل سر تومن رو این رو همش به معنی اسمی بگیم خیلی طولانی میشه مثلا سیرش معنی اسمیست متکلم سرسو این هم اسم بسره هم هست این سه تا واقعی اسمی ابتدا هم به اصطلاح این هم خودش خود معنای نصفی ابتدا هم یک معنای اسمی حدث و به اصطلاح وجود فعل فعل به معنای حدثی حدث به این معنا فعل رو به این معنا گرفتیم لفظ فعل است که دلالت میکنه که شما اسناد میدیم یک فعلی رو یک حدثی رو این در مفهوم فعل به یک ذات ما دقیق کنیم نقصه نقصه زریفیه یعنی ما اعتقادمونه که در فعل نظر اول رو حدثیه نظر دوم اسناد به ذات ما البته اینا خیلی به هم پیچیدن این نیست که لداشون بود. فرقش کجا ظاهر میشه یعنی فرق گذاشتیم بین ضربه و ضربه در ضربه اون مثبه اولیتون خود ضربه دومیش اصناد این ضرب به ذات ما اما در ضربه مثبه اولی زاکه لیکن اسناد دادیم ببین هدس رو که ضرب باشه حالا به نحوه اسناد صدوری و حدوسی و حلولی الاخری و ولذا توی بعضی از تعریف از مثلا ظارب نسبت و ضرب نه نسبت و ضرب یا ضرب ما نیز الى ذات ما در ظارب در ظارب هیئت فائم رو در لغت عرب به این آورد که ذات رو اول در نظر میگیره و این حیثیت که ذات یک نسبتی با این ضرب با این حدث داره این نسبت یا نسبت صدوریس یا نسبت غلوریس یا نسبت مثلا پس یکی از آنها نسبت ما بین ظار این خوبه خب شما این مطلب رو باید فکر بکنید واقعا بین ظربه و وزاره رو ارتكازاتشون چی فرده ایستاد و ایستا مثلا قائم و قامه ما بین نظر ما در چه این نکته هست میاد حدثی رو در نظر میگیره نسبتش میده به ذات ما نسبت به یک امر اندکاتیه این هدف است و با ذات ما و این نسبت به نهر حدوثه یعنی به نهر حدوث یعنی در نظر گرفته که این نبوده و شد در اسم مشتقی اسم فائل نبوده و شد در نظر گرفته نشده در قائم فقط نظر بینی که این ایستاده اما قبلا نشسته بوده در نظر اما وقتی گفت قام زیدون توش نظر گرفته که نبود شد که هست کردیم به تعبیر مرحوم آشوان منظرسه نسبانی قدس الله و نفسه اخ به نسبت و حدث به نحو حرکت سیلانیه من الادمه الالوجود در فعل وقتی بگی قام زیدون خود دقت بکنید زید ایسا که انما در ذهنتون هست نبود شد اما وقتی میرید بیگزان چون چونکه نظر نداری نبود شد ببینید قائم و قامه توانستیم با این تحلیل دو تا فرق اساسی بگذارید در فعل حدث نسبت داده شده در مشتق زاد در نظر گرفته در فعل این نسبت به نهبه حرکت سیالانی اون را عدم وجوده در اشتغار اصلا این نیست فقط قیام و او و صدور و نسبت قوس حالا به نحوه صدور باشه قیام باشه و حلول باشه هم نحوه مخاده باشه حالت سابقه و جنبه حدثی درش در نظر گرفته نشده این معنی تحلیله در تحلیل معنی حرفی هم همینطور ببینید سیر هست ابتدا هست متکلم هست بسره هست اون نقطه حدث بودن زمانی یعنی سیر نبود و شد این هست چون در فیر این نقطه هست که وجود و عدم لحاظ کرده لذا باز با یک هیئت واحد آمده لحاظ کرده که این به اصطلاح انتقال از عدم به وجود این حرکت سیال اینیه نسبت به زمان تکلم زمان تکلم در نظر بگیم مبدع قبلش بود هینش بود بعدش بود تمام چهت معناست تمام این ظرافت ها در طول تاریخ لغت هی مندمج شده هی مندمج شده هی حالت اند و لذا بعضیا فرق بین معنای اسمی و حرفی را به نمره اندماج می‌ذارن یا اختصار این هم یه تحلیل دیگه یعنی معنای حرفی شاید در ابتدا معنای حرفی چند تا بیشتر هی در طول زمان اندماج یعنی کلمه ببینید شما توش معنای حرکت سیارانی هست توش حدث هست، سوش متکلم هست، نسبت متکلم هست، این نسبت قبل از زمان هست، ادگاه هست، مبتدا و مفعول تمام اینها اون سیر رو ملاحظه کرده که قبلش سیر نبوده، بصرا ملاحظه کرده قبل از بصرا سیر نبوده. دقیق. تمام این مطالب رو این در زمان ماضی بوده و زمان در... تمام اینا جلو سیر تمون در لذا بعضی آنان گفتن معنای حرفی در حقیقت با اسمی فرقی نداره فقط نقطهش اینه معنای حرطی اندماجه یعنی شما با چارپند 500 رو بنویسید این مطالب رو این چارپند سطح رو آماده با یک کلمه سرطومنال بس تمامش کرده و برای همینه که عرض می کنم هر مقدار حیائات و حیصیات مانی حرفی زیاد بشه معناش اینه که عقلیات این جامعه جلو راهه چون هی باید ادغام شده جمع بکنه جمع بکنه هی جمع بکنه به جای فرض مثل این برنامه کامپیوتری که جمع بکنه یه رمز میذاره این هی جمع بکنه با یه رمزگذاری از هی باز, باز مفاهیم متعدد رو سرقت کردین اینه برادر دین اون وقت برگردیم به فلسفه این تحلیل اینجاست که فکر فاکرمو فا اینجا همون طوره، اینجا چند تا معناه هست این معانی که در اینجا در خود متکلم رو در نظر گرفته که جنبه آمریت داره مخاطب رو در نظر گرفته مثلا بیان مخاطب با اکرم هست در جا هر جایی یک جوره اینجا که در اولش با کافه با دومش با حیطه اینجا که زیدان فرکه پس خودش در نظر گرفته زید در نظر گرفته ما به حساب مفهوم اکرام رو در نظر گرفته اون وقت معانی نسبیه در یک نسبتی آمده اینجوری کرده با عنوان آمریت این اکرام رو که یک معنای حدسیست بر زلمه و در اعتبار مخاطب قرار داده اکرام رو لیکن در همین معنای نسبی میتونه این قرار دادن رو مطلق بگیره بگه اکرم زیدن میتونه مقعید همون معنای نسبی رو مقعید بکنه اینجا که زیدون فکر بکنه امکان زید مشهدن فکر. بکنه پس بنابراین خلافاً لمروم ناینی که معانی هرتیه قابل تبید اطلاق نیستن نه انصافاً هیچ مشکل نداره این قابل لحاظ کامل لکن معانی حرفیه همون عین معانی اسمی هستند اندکاکیان یا اندماجیان حالا اندماجی هم میشه گفت. لکن اینها رو جمع کرده آمریت آمر مأمور، اکرام، اعتبار، اعتباری و به اصطلاح ابرازی این به نحو اعتبار این رابطه که آمده در این رابطه میتونه اون رو مطرح بیاره یا اکرم زیدان میتونونه اون رو مقید بیاره میگه اینجا که زیدان پر. و لذا این این کار اساسیش چیه؟ کار اساسیش میاد در اون نسبتی که بین ف و معمور و معمور به هست دی میزنه. و ما از کردیم طبق این تصور حق این هست که غید برم به هیئت مرد میشه؟ نه نرسو از مرحوم شه قیل برگرده به ماده که اکرام باشه ما از کلیم انصاف قضیه میتونه قید رو به ماده برگردونه میتونه قید رو به هیئت برگردونه هر دو امکان داره این خطلت انسانی سعی نفس و افق نفس انسانی میتونه هم اکرام رو مقلیت بکنه هم میتونه هیئت آمری و اون جهت امر و اون جعه اعتبار امری رو اون رو مقید هر دو امکان داره بله نسبت به زیل هم امکان داره که نسبت به احوال چون زید معرفه است دیگه اون هم امکان داره احوال زید در نظر بگیره مقید بکنه پس انها این تصرفات ام... اینی که ما مهم پیش ما باید برگردیم به ارتكازات و عرفی به شاهد و عرفی میگیم ظاهرش اینه که این ام در لغت عربی ولی ازا این معنا رو نمیده این در لغت عربی آمده اون اعتبار رو مقید کرده اون جهل رو اون طلب رو مقید کرده اون طلب نسبی اون به اصطلاح انگیختن انگ، به اصطلاح را انداختن تحریک اون تحریک نسبی رو که نسبت بین فائل بین آمر و معمور آمده این تحریک رو محدود کرده انجاک زیدان و اکرمو لیکن ممکن است اکرام رو هم محدود بکنه، تغییر بزنه. ظاهرش اینه که اون معنا رو تق... و میتونه همون معنا رو هم تقیید نکنه. اگر گفت اثرم زیدن، میتونه تعریف نکنه و ما میگیم اطلاق داره. یعنی زید رو اکرام بکن عالم باشه فاضل باشه. زید رو اکرام بکن مشکل باشه، نباشه. دیگه تا بیاد نه،, نه تا مثلا خوشم بده. زیدن ظاهرش اطلاق کردنه. روشن شد پس اینه که ما بگیم اطلاع داخل در مفاد حیاءات و معانی حرفیه نمیشه انصافا لا یوم شدون مساعدت علیه الله علیه محمد و علیه